Thank you. مثل پانزده هم روزها و هفته ها و ماهها مثل برق و باد گذشتند و سالگرد مرگ آقا جون فرا رسید امیر بعد از فوت پدرم علا ناراحتی همه ما به دلیل خواست مادرم به دنبال کار انحصار براست برای فروش خانه بود می خواستیم از خانهی که به قول مادر برامون قدم نداشت برفت خانه‌ای که برخلاف خانه قدیمی هیچ کس به آن دلبستگی نداشت. بالاخره های امیر ثمر داد و به خواست مادر قرار شد سهم‌الارث هر هرکس معلوم شود. مغازه و انبار با توافق همه دست نخورده ماند و امیر تا تمام شدن درس علی مسئولیت آن را به عهده گرفت. از پول فروش خانه هم یک آپارتمان خریدیم. چون مادر بعد از مرگ پدرم دیگر در خانه‌های حیات دار احساس آرامش نداشت. بقیه پولها هم تقسیم شد و به حساب هر کس جداگانه ریخته شد. یک سال و نیم بعد از فوت پدرم ما از خانه که تویش عزیزترین کسانم را از دست داده بودم رفتیم. و همان وقتها بود که آرام آرام امیر زمزمه ازدواج سر داد و شش ماه بعد درست همزمان با تمام شدن درس من بود که امیر مادر را برای خاستگاری و ازدواج با سرعیا راضی کرد. نمیتوانم احساسم را از وصلت امیر با سریا بیان کنم. خوشحال بودم یا غمگین؟ می میکردم یا حسرت میخوردم؟ نمیدانم. امیر سرعیا را بی نهایت دوست داشت و من به خاطر برادرم باید سرعیا را دوست میداشتم. سرعیه را که در تمام این سالها همه ی را برای فراموشیش کرده بودم ولی حالا در عین حال دیگر قبول داشتم که گناه ندانم کاری و حماقت من پای نیست. به هر حال او برای من تدایی کننده گذشته بود و در عین حال احمق بودن خودم را به روخم می کشید که باز هم عذاب کمی نبود. روزی که همراه مادر برای خاستگاری به خانه ی رفتیم که حالا آپارتمانی کوچک و آراسته بود، چه حال غریبی داشتم. سهر خانم به نسبت پنج سال خیلی شکسته تر شده بود. آن روز او هم مثل من نتوانست تعثرش را پنهان کند. با مظلومیت آه کشید و بدون اینکه حرفی بزند، نم که چشمش را با دست پاک کرد. من چه تلاشی کردم که ظاهرم خوشحال باشد و آرام و بی تأثیر. مادر با تمام سعی و تلاشی که در سخت گیری داشت وقتی سرگی را دید نظرش فوری عوض شد و مهرش بر دلش نشست و موافقتش را توی راه برگشت به زبان آورد. خوب وقتی تو چند سال این فکر توی دخترم اینقدر خوب بود چرا تا وقتی آقا جونت بود نگفتی که لاقل آرزو از دل اون خدا بیا مرزم بر بیاد. امیر فقط آهی کشید و سکوت کرد. و من در حالی که اشکی گرم چشمهایم را می‌سوزاند فکر کردم راستی الان اگه آقا جون بود چه حالی داشت؟ آقا جونی که اونقدر آرزوی سر و سامون گرفتن بچه ها شداشت. ولی یک چیز برایم مسلم بود که سریا با آن رفتار مهربان و بیالگش و در عین حال موقرانه و مسلط به سرعت در دل پدرم هم جا باز میکرد. نمیدانم چرا به نظرم صورتش دوست داشتنی می و حتی زیبا. صورت او که مسلمان فرقی نکرده بود پس حتما به خاطر نگاه من بود. مقدمات عروسی امیر و سورایا خیلی زود رو راه شد و به خواست سورایا یک مراسم معمولی و بدون تشریفات برگزار شد. امیر آپارتمانی نزدیک خانه ما خرید و الحق، با اینکه خانهشان جدا بود، نه سریا، نه امیر، هیچ وقت ما یا در حقیقت مادر را تنها نگذاشتند. سریا که به خواست امیر دیگر بیرون از خانه کار نمیکرد، با مادر رفتاری سرشار از محبت داشت و رابطه دوستانه و بسیار نزدیک با من و علی برقرار کرده بود. خیلی زود جای خودش را توی خانه ما باز کرد. و امیر هم تمام سعی خودش را می کرد تا پسری دیگر برای زهر خانم باشد امیر درست انتخاب کرده بود سریا همسری شایسته برای او و عروسی شایسته برای ما بود که اگر خانم جون و پدرم بودند حتما به وجودش افتخار می کردند چیزی که در روابط امیر و سریا خیلی برای من جالب بود این بود که در حالی که علاقه بی اندازه‌ی امیر به سُریّا از رفتار و نگاهش کاملاً هویدا بود. هنوز هم مثل گذشته ها از سر به سر گذاشتن و درآوردن صدای سُریّا لذت میبرد. و همیشه وقتی میخواست صدای سُریّا را در بیاورد، صدایش میزد. زن پسرآجی و نمیدانست هر بار با این حرف، من ناخداگاه یاد چه خاطره‌هایی میافتم. فرق آنها با من این بود که فهمیده بودند چرا و چرا میخواهند و به پای خواستهشان هم آنقدر صبر و استقامت کردند تا بالاخره صبرشان به ثمر نشست و من بیشتر به عیب خودم در ها پی بردم و اینکه یار دانا و صبوری برای محمد نبودم به هر حال هنوز بعد از سالها هر بار که امیر به شوخی به جواد می گفت چطوری اوس جواد بی اختیار یاد محمد افتادم. و فکر میکرد حالا او هم حتما فوق لیسانسش را گرفته و شده اوس محمد. وقتی محبت های امیر را به سرعیا میدیدم، باور نمیکردم که امیر تا این حد بتواند مثل یک مرد عاشق و شیفت رفتار کند. دیده خواهرها نسبت به برادرها توریست که انگار توقع دارند همیشه و همه جا رفتارشان برادروار باشد. مثل زری که آن سالها می گفت من باورم نمیشه محمد اصلا به این چیزا فکر کنه من هم از شیفتگی که در کلام و رفتار امیر بود تعجب می کردم. خلاصه همانطور که سارایی با تمام توان برای خانواده ما یک دختر دیگر شد امیر هم برای جواد و زهر خانم پسر دیگری شد و زهر خانم در هر فرصتی این موضوع را به زبان می آورد. خدا را شکر زندگی آنها در مسیری درست افتاده بود. و آرام پیش می رفت. و من وقتی از خوشبختی امیر و خوشحالی مادرم ذوق می کردم، در عین حال احساس می کردم انگار حلقه معیوب خانواده فقط من هستم من که زودتر از همه خوشبختی را به چنگ آورده و از کف داده بودم و این رنج مثل خور سوهان روحم می شد و نمی توانستم دم بزنم هر چیزی توی این دنیا بهایی دارد که انسان برای به دست آوردنش باید آن را بپردازد این میان عشق مخصوصا عشق حقیقی جزو چیزهایی است که هر کسی توان و استطاعت پرداخت بهای آن را ندارد و فقط معدود کسانی که از عهده پرداخت بهایش برمیآیند میتوانند توانند مست و رها به لذت بی‌همتایش بدهند و خب مسلما من جز آن دسته نبودم من که همیشه در ذهنم این امید را داشتم که محمد ارتباطش را با خانواده یا حفظ کرده باشد، بالاخره با ازدواج و امیر و سریا این امیدم هم تبدیل به یهز شد. وقتی نه خبری از او شد و نه حرفی درباره او از آنها شنیدم، مطمئن شدم که آنها هم بیخبرند و سرخورده و معیوس و ناامید باز چشم به گذشته و خاطراتم دوختم. چون امیدی به آینده نداشتم. هرچه بود، استراب بود و بلا تکلیفی و حراس. یاد دارم یکی از روزهای پاییز سال آخر دانشگاه، یکی از هم کلاسی به مناسبت نامزدیش شیرینی پخش می کرد و همه به او تبریک می گفتند. یکی از بچه ها پرسید، راستی پریسا اسم داماد چیه؟ وقتی پریسا گفت محمد، دل من یک دفعه فرو ریخت. انگار یکی به دلم چنگ زد. عشقی که موقعی به زبان آوردن آن اسم در صدای پریسا بود، قلبم را لرزاند. و یک لحظه با وحشت این فکر کشنده به ذهنم خطور کرد که نکند. با دلهرو تشویش پرسیدم. فامیلش چیه؟ شاید چند ثانیه هم بین گفتن اسم و فامیل فاصله نیفتاد. ولی همان چند ثانیه برای دیوانه کردن من کافی بود. این واقعیت به ذهنم هوشوم آورد که شاید محمد ازدواج کرده باشد ولی من هیچ وقت نمیخواستم به این واقعیت فکر کنم آن روز در حالی که از قصه و افکار درهم کلافه بودم قید کلاس آخر را زدم و به نرگس گفتم میخوام برم بیرون میای یا نه نرگس پرسید با این عجله کجا با صد به سرت وقتی سکوت هم را دید همانطور که دنبالم می آمد گفت پرسیدم کجا میری؟ نمیدونم آخر دنیا میایی یا نه نرگس که فهمیده بود حالم خوب نیست دیگر چیزی نگفت و در سکوت کنارم نشست و من که مثل دیوانه ها رانندگی میکردم تا جادهی اولی رفتم به اول جاده که رسیدم حیران ایستادم و مستصل سرم رو روی فرمان گذاشتم در تمام طول راه با فکری مخشوش به گذشته و آینده نامعلومم فکر می کردم و اینکه زندگی من آخرش به کجا می رسد؟ از آینده وجودم را مچاله می و من راه به جایی نداشتم تا کی چشم به راه بودن چشم به راه مجزه که معلوم نبود اصلا اتفاق بیفتد. بالاخره حوصله که نرگ سر رفت و با لحنی خنددار پرسید: میشه بفرمایین اینجا کجاست؟ نکنه آخر دنیا اینجاست سرم را بلند کردم و لبخند زدم باز همونطور خندان گفت: خاک بر سرت وقتی اول دنیا خونت باشه آخرش اینجا دیگه معلوم زندگی چی میشه آخه بیچاره. تو چه رنگت دنیات کوچیکه؟ میترسی دنیاتو بزرگ کنی از پس جم و کردنش بر نیای؟ وقتی سکوتم را دید اضافه کرد یعنی هنوز اینو نفهمیدی که اون چه قراره پیش بیاد پیش میاد چه تو خودتو قایم کنی چه سرتو بالا بگیری و نگاه کنی؟ آخه تا کی میخوای خواهی کلتو بکنی زیر برف؟ خجالت نمیکشی از شنیدن یه اسم و ربطش دادن به یک واقعیت اینجوری میشی؟ تو باید اینو قبول کنی که این قضیه چه تو بفهمی و با خبر بشی و چه نه اگه تا حالا اتفاق نیفتاده باشه به هر حال بعد از این اتفاق میافته. پس مثل بچه ها رفتار نکن با خودت رو راست باش اون که مسلمن که دنیا نشده همونطور که تو نمیتونی بشی حتی نمیتوانستم بشنوم. چه برستد به اینکه که فکر کنم؟ برای همین به هر بدبختی که بود دهان نرگس را بستم که برایم از واقعیتی که نمیخواستم به آن فکر کنم نگوید. ولی بعد از آن روز همیشه با فکر با آینده حرفهای آن روز نرگس توی گوشم میپیچید که مسلما اوتاره که دنیا نشده و من حراسان روبر برمیگرداندم تا فراموش کنم. زمان به خاطر دل من متوقف نمیشد. میگذشت. سری سریع هم میگذشت و آیندگی دوستانم یک به یک مشخص میشد. اول از همه مریم با برادر یکی از هم کلاسی هایش که پسری به نام ناصر بود ازدواج کرد. ناصر که فارغ و تحصیل رشده حقوق بود، برخلاف مریم فوقالعاده سر و زباندار و با پشتگار و خوشفکر بود. به پیشنهاد ناصر بود که من و مریم تصمیم گرفتیم مهد کودک دایر کنیم و یک سال بعد از تمام شدن درسمان با فعالیت و تلاش ناصر و مریم و سرمایه‌ای که من از سهم خودم گذاشتم در تلاش باز کردن مهد کودک بودیم. سورایا ماه‌های آخر حاملگی‌اش را می‌گذراند و هایی از به قول نرگس با شدن مهندس پارسا بود. آزیتا بالاخره در برابر اصرارهای مهندس پارسا نرم شده بود و مقدمات نامزدیشان فراهم می که سر و کله یک خاستگار سمیش هم برای من پیدا شد و بعد از چند سال زمزمه های مادر با شدتی چند برابر دوباره شروع شد. دیگر در کار نبود. درسم هم تمام شده بود و من دلیلی قابل قبول برای سرباز زدن از ازدواج نداشتم. کارم یکی از دوستان امیر و جواد بود که در عین حال رئیس شرکتی بود که جواد در آن کار میکرد. اسمش شاهین ارجمند بود سی و یکی دو سال داشت و از خانواده‌ای سرشناس و پولدار بود البته نصف بیشتر ثروت خودش با آورده بود که از تقسیم ارثی که پدرش با وجود زنده بودن بین پنج پسرش تقسیم کرده بود به او رسیده بود جواد در عین اینکه از خلق و خوی او داده سخن میداد. از مشکل پسندیش در انتخاب هم سرهم می گفت تا من از اینکه انتخابم کرده زوغ کنم. در حالی که هر به جای من مادر زوغ می کرد من دلم میخواست خواست کلی جواد رو بکنم. این دیگر غریبه یا از بچه دانشگاه نبود که بتوان با همدستی نرگس دست به سرش کرد. وقتی می نمیخواهم نمی شوهر کنم مادر براش افته می شد و کار از بگومگو به گری و و بیقراری مادر میکشید. و آخر سر هم برای اولین بار بعد از رفتن محمد امیر با من کلنجار رفت. اسرار آنها برای اینکه او باید برای خواستگاری بیاید، برای من غیر قابل قبول و برای آنها غیر قابل مخالفت بود. بالاخره هم مادر با گریه و زاری و التماس پیش برد. بیچاره مادرم. با چه وحشتی از اینکه سنم دارد بالا می رود و ازدواجم دیر می شود حرف می‌زند. مادرم در روز خاستگاری مخصوصاً برای اینکه مجابم کند از نرگز هم خواسته بود که بیاید. نرگس توی آشپزخانه قایم شده بود که از لایه در آقای ارجمند را که به قول مامان خیلی برازنده بود ببیند و نظر مادر را تایید کند. من خودم قبلا یکی دوبار خانه ی امیر دیده بودمش. خلاصه جناب آقای ارجمند با سری افراخته و اعتماد به نفسی کامل وارد شد. رفتار و نگاهش به من طوری بود انگار همه چیز تمام شده است و همین بیشتر کفرم را در می آورد. مادرش از خودش بدتر بود. فکر میکرد تنها مسئله مهم نظر اوست. با نگاهی خریدارانه در حالی که مدام دستهایش را که پر از انگشترهای گنده بود تکان میداد و سخنرانی میکرد و مرا برانداز می کرد. سبد گلی که آورده بودند آن قدر بزرگ بود که حتی زورم نمی رسید جا به جایش کنم. هرچه مادر و امیر و سریا که مثل توپ قلقلی و چاخ شده بود روی باز و گرم نشان میدادند، من لجم بیشتر می شد و سردی رفتار و اخمهایم هم بیشتر. بعد از چند دقیقه که نشسته بودم پا شدم و رفتم توی آشپزخانه پیش نرگس نرگس با خنده گفت خیافهٔ آدمای مقبون مقبونو به خودت نگیر از سر تو هم زیاده شاید حق با او بود منتها در اصل قضیه فرقی نداشت چه از سرم زیاد بود و چه چکم در جواب من تأثیری نداشت با بیخیالی چای ریختم اما تا خواستم بنشینم مادر صدایم زد ای نبود باید میرفتم نه سال گذشته بود و من چقدر با مهنازی که دنبال محترم خانم می رفت که با خاستگارهایش سلام و علیک کند فرق کرده بودم. حالا نه تنها دست و پایم نمی لرزید، قادر بودم با خون سردی آقای ارجمند و مادر گرامیش را با اردنگی از خانه بیرون کنم. بازی کردن نقشی که معمولا از یک دختر در چنین مواردی انتظار می پس از من خیلی گذشته بود و دیگر از دستم بر نمی آمد. از این مراسم و حرکات مسخرت دلم به درد آمده بود. دردی که قابل بیان برای دیگران نبود و هرسن وقتی بیشتر شد که مادر و امیر گفتند آقای ارجمند را راه کن برین صحبت کنین. نگاهی که به مادر کردم آنقدر دهنده بود که بیچاره مادر دست با رویش را به امیر کرد و با نگاه از او کمک خواست. و امیر که مثل همیشه با شوخی و سر و صدا فضا بود. هر دوی ما را به اتاق من راه کرد. احساس آدم در مورد موضوعی واحد در دو زمان مختلف چقدر می تواند متفاوت باشد. یعنی من همان مهناز چند سال پیش بودم که همراه محمد می تا دو نفری صحبت کنند. وقتی امیر در را بست از حال خودم تعجب کردم. توی دلم نه خجالت بود نه شوق نه تشویش هیچ چیز نم. هیچ چیز، هرچه بود، هرس بود و قصه و خفقان، این درد بی درمان را چه کسی می توانست بفهمد، از وضع خودم و از اجباری که به تحمل داشتم و عذابی که میکشیدم سرسام گرفتم، از همه بدتر حس انزجاری بود که نگاه محو تماشا و مشتاق و پر از تمایل او در من به وجود می آورد. از لبخندهایش حال تهوو به من دست میداد و از حاشیه رفتنهایش حال خفقان چقدر دلم میخواست خواست می توانستم بگویم برو گم شو و از اتاق بیاندازمش بیرون پشت میزی که محمد همیشه می نشست با آن حال صاحب خانگی نشسته بود و حرف می زد و من نمی شنیدم این بار نه از سر شوق از سر انزجار و نفرت دیگر از آن مهناز که مثل گربه ای ملوس فقط به درد ناز و نوازش میخورد خبری نبود. اینکه بود ببری بود که دلش میخواست چنگ بیاندازد و از هم بدرد. در میان سخنرانی طولانیش فقط منهای بیشماری که به کار میبرد بگشم میخورد و لحظه به لحظه تحملم کمتر میشد که یک دفعه دست برد و قاب خاتم محمد را برداشت. و من از این دستهایش به جای دستهای محمد میخورد، حال جنون پیدا کردم. لبخندی زد و گفت، چه دختر قشنگی؟ همین، حتی نگاهش هم به شعر نیفتاد. چقدر از او بدم آمد، به نظرم آمد یک احمق است. یک احمق پول دار که پول مثل نقابی خوشاب و رنگ روی حماقتش را میپوشاند. درست به حماقت چند سال قبل خودم او حرف میزد و من در حالی که سرم پایین بود غرق خاطرات آن شب گرم تابستانی بودم که برای اولین بار به صدای خوش آهنگ محمد که مرا مخاطب قرار داده بود گوش میدادم. خدایا این چه سرطانی است که با دست خودم به جانم انداختم یعنی من دیگر هیچگاه درمان نمیشدم؟ توی افکار در هم و برهم هم قوطه خوردم او که حرفایش ته کشیده بود، با لحنی که به گوش من به جای مهربانی مسخره می آمد پرسید. شما سوالی نداری؟ فکم را به هم فشردم و تمام نیرویم را جمع کردم که حرف نامربوط نزنم. سرم را بلند کردم و در حالی که به جای اون نگاهم به قاب خاتم روی میز بود گفتم. نه. چه خورد و پرسید. یعنی هیچ حرف و سآلی نیست؟ صدایم از خشم خش برداشته داشته بود انگار تقصیر او بود که محمد را از دست داده بودم دوباره گفتم؟ نه اگه سوالی باشه بعد حتما میپرسم به زور از جایش بلند شد و احساس کردم که دماقش سوخته معلوم بود که خودش را برای جواب دادن های قرار آماده میکرده و حالا وا رفته بود و من دلم خنک شد وقتی بیرون رفت. بدون اینکه جواب اوز خواهیش را بدهم در را بستم و به سینم چنگ زدم. احساس خفگی کردم. انگار چیزی روی قلبم سنگینی می کرد. دستم به زنجیر گردنم خورد. زنجیر محمد. بی اختیار از ذهنم گذشت. خدای لعنتت کنه محمد. ولی فوری زبانم را گاز گرفتم. چرا او را؟ کسی که باید لعنت شود منم که شدم. خوب هم شدم عشقایم سراسیر شد که امیر در را باز کرد ولی تا چشمش به من افتاد آمد توی اتاق و در را بست و با صدایی آهسته پرسید چهته این کارا یعنی چی؟ محنوز من چلوی این دارم آخه حرفش را بریدم ولی من ندارم بگو برن گمشن من آدم نه وسیله یه افسابه رو. گری حرفم را قطع کرد و امیر با عصبانیت بیرون رفت آن روز به قول مادرم با آبرو رو ریسی گذشت ولی با این که مادرم و بقیه با من قهر کردند و اگر مسئله زایمان سره یا پیش نیامده بود معلوم نبود تا که این قضیه توی خانه ما کش پیدا میکرد. ولی آقای ارجمند از رو نرفته بود نرگس هرگز گفت شاید کنشکاف شده ببینه چجوریه که همه براش خش و ضعف میکنن اون وقت تو اینجوری میکنی بیچاره اینو پای خانومی تو گذاشته و خبر نداره که کار از جای دیگه خرابه همان روز خاستگاری با نرگس که به خاطر مادر و خانواده هم سعی داشت مثلا مرا سر عقل بیاورد جر و بحث مفصلی کردم که باعث شد با حالت قهر از خانه ما برم فردای آن روز وقتی سر کلس خوش نویسی که هنوز هفته یک روز میرفتیم دیدمش آشتی جویانه به خاطر تندی رفتار روز قبلم به طرفش رفتم و لبخند زدم. که نرگس گفت بیخوادی واسه خر کردن من لبخندش رو کن نزن. از ته دل خندیدم و شروع به معذرت خواهی کردم. ببخشی به خود دست خودم نبود. در حالی که از لویه ورقه هایش ورقه ای را در می آورد و به دستم میداد گفت اتفاقا فقط دست خودت بود بخون تا بفهمی روی یک ورقه با خطی خوش این شعر را نوشته بود منان مرغم که افکندم به دام صد بلا خود را به یک پرواز بیهنگام کردم مبتلا خود را نه دستی داشتم بر سر نپایی داشتم در گل. به دست خیش کردم این چنین بی دست و پا خود را. چنان از طرح وضع ناپسند خود کریزانم، که گر دستم دهد از خیش هم سازم جدا خود را. هنوز هم آن ورقه به دیوار اتاقم است. با نرگس آشتی کردم. در حالی که از راه زریفی که برای بیان حال من پیدا کرده بود، هم رنجیده بودم و هم خوشم آمده بود. سه روز بعد سرعی وضع حمل کرد و دختری زریف و کوچولو بینهایت عزیز برای همه ما به دنیا آورد که اسمش را سهر گذاشتند. به دنیا آمدن سهر برای زندگی آرام ما یک دنیا هیجان بود. برای ما که هیچ وقت اطرافمان ما بچه نداشتیم سهر شد چشم و چراغ خانه ما و روشنی دل مادر و هرچه بزرگتر می شد و شباهتش به گفته مادرم به من بیشتر می شد علاقه من به او چندین برابر می شد. مادر همیشه می گفت انگار تو رو کوچولو کردن و من چه لذتی می بردم از اینکه او را در آغوش بگیرم. سهر باعث بیدار شدن نیازهایی توی وجود من شد که خودم هم از وجودشان خبر نداشتم. وقتی او را در آغوش می‌گرفتم، ناخود به این فکر می افتادم که چقدر دوست دارم سهر بچهگی خودم باشد و فکر میکردم چقدر دلم میخواهد بچه ای داشته باشم. بچهی که بی اختیار در ذهن من شبیه به محمد مجسم میشد. از فعل و انفعالاتی که توی مغزم صورت میگرفت مبهوت می, گرفت، می شدم. وقتی برای صحل لالایی می خاندم و او در حالی که سرش روی شانه یا سینام بود خوابش می برد، یا با سر و صداهای بچگان جواب ابراز احساسات مرا میداد حسی سرکش و غیر قابل مقاومت مرا در خود می‌گرفت و حسرتی سوزان وجودم را با آتش میکشید. حسرت بچه‌ای که مسلمن می می‌توانستم حالا داشته باشم و نداشتم. وقتی به خیالم مجال جولان می‌دادم، پیش از همه چیز محمد را به عنوان پدر بچه‌ام مجسم می‌کردم. و از تصور اینکه محمد با آن عطوفت و مهر و آن روحیه ظریف و در عین حال محکم و قاطع می توانست یکی از بهترین پدرها باشد، غرق حسرت می شد. با در آغوش گرفتن سهر، لذت داشتن و نیاز به داشتن بچه و مادر شدن را در خودم حس می کردم. لذت بینهایت در آغوش گرفتن موجود ضعیف و کوچکی که از گوشت و خون خود آدم باشد. احساس می کردم وجودم از محبتی ناب پر می شود و وقتی امیر قربان صدقه سهر می رفت یا نگاه های سرشار از محبتش را به سرعیه و سهر می دیدم بی اختیار محمد در نظرم مجسم می و فکر می کردم اگر الان بود اگر ما بچه دار شده بودیم رفتار او چطور بود؟ مطمئن بودم او همانطور که بهترین شوهر برای من بود می توانست بهترین پدر باشد و از رنج اینکه من هم خودم و هم بچه ای را که حالا در آرزویش بودم از نعمت وجود او محروم کرده بودم به خودم میپیچیدم و رنج می بردم. اما بی حاسل. از زمانی که دنیا دنیا بوده خود کرده ها را تدبیری نبوده پس غیر از عذاب حاصلی برای من هم نبود. مگر همیشه نمیگویند تا پیفتد و بینت سزای خیش. من افتادهای بودم که سزای خود را می‌دیدم و درد می‌کشیدم. دردی بدون دارو و امید به بود.